سلام و صد سلام خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی کانال هزار افسان. امروز در خدمتتون هستم تا ادامه قصه زیبای پرنده آبی رو با همدیگه بشنویم. داستان رو تا اونجا شنیدیم که شاهدخت فیوردلیسا به مکر و حیله نامادریش در یکی از اتاقهای برج زندانی شد و شاهزاده دلربا علیرغم اصرارهای ملکه و پریمازیلا حاضر نشد با طوری ازدواج بکنه و به کیفر این نافرمانی پریمازیلا اون رو به شکل پرندگی آبی درآورد آورد که باید هفت سال هم به این شکل باقی بمونه. حالا بریم ادامه داستان رو با هم دیگه بشنویم. پرندگی آبی پرواز کرد تا اینکه به انبوه ترین بخش جنگل رسید روی درخت سروی آرام گرفت و به سرنوشت دردناک خودش ناله سرداد. افسوس چه کسی میدونه که توی این هفت سال به سر دلارم فیوردلیسا چی میاد؟ قبل از اون که خودم رو پیدا کنم نامادری ستمکارش اون رو به ازدواج شخص ای در خواهد آورد. در این صورت زندگی برای من چه ارزشی داره؟ در این اسنا، پری مازیلا توریتلا رو پیش ملکه برگردوند ملکه که کاملا نگران مراسم عروسی بود، موقعی که دخترش وارد شد و همه چیز رو براش تعریف کرد، شدیدا خشمگین شد. البته که تمام خشمش رو هم به سر فیوردلیسای بیچاره خالی کرد. ملکه در حالی که سرش رو تکون میداد گفت بلایی به سرش میارم که پادشاه از ستایش اون پشیمون بشه. بعد اون و توریتلا به اتاق کوچکی که شاه دختر در اونجا زندانی شده بود رفتند. فیوردلیسا وقتی دید توریتلا ردای سلطنتی پوشیده و تاج الماس به سر گذاشته بسیار متعجب و آزرد دل شد. ملکه گفت دخترم اومده تا بعضی از هدیه‌های های عروسیش رو بهت نشون بده چون حالا اون عروس پادشاه دل رو باز و اونها خوشبختترین زوج در جهان هستند. پادشاه هم اون رو دیوانه وار دوست داره توریتلا تمام لوازم ارزشمند مثل تورهای حریر جواهرات گلدوزیهای گرانبها و پارچه نوارهای قیمتی خودش رو در برابر چشمان زده فیوردلیسا پهن کرد و با دقت زیاد حلقه پادشاه دلربا رو که در انگشت شستش کرده بود نشونش داد شاه دخت همین که چشمش به حلقه افتاد اون رو شناخت و دیگه تردید نکرد که پادشاه با توریتلا واقعا ازدواج کرده. اون با ناامیدی فریاد زد این آشخاله رو از جلوی چشمام دور کن دیدنشون برای زندانی بدبختی مثل من چه فایده ای داره و بیهوش به زمین افتاد. ملکه یه سه بدخواهان خندید و به همراه توریتلا از اتاق بیرون رفتند. اونها شاهدخت رو نامید و دل تنها گذاشتند. اون شب ملکه به پادشاه گفت که دخترش خیلی شیفته پادشاه دل رو هرچند که اون هیچ علاقی بهش نشون نمیده. پس عادلانه است که در برج بمونه تا عقلش سر جاش بیاد. پادشاه جواب داد که این مسئله مربوط به ملکه است و هرچه صلاح شادخته همون را انجام بده. موقعی که فیوردلیسای بخت برگشته به هوش اومد و تمام حرفایی رو که شنیده بود بیاد آورد به تلخی گریه کرد و باور کرد که پادشاه دلربا رو تا ابد از دست داده اون تمام شب در کنار پنجره باز مینشست و آه سرد میکشید و ناله و زاری می کرد. موقعی که سپیده میزد، اون به ترین گوشه اتاق میخزید و در اونجا مینشست. از شدت بدبختی و درماندگی به هیچ چیزی توجه نمیکرد. همین که شب از راه می رسید، یک بار دیگه در تاریکی اتاق به سرنوشت تلخ خودش ناله و زاری می کرد. از قضا، پادشاه دل یا همون پرنده آبی به این امید که شاه محبوبش رو ببینه دور قصر به پرواز در اومد. خیلی جرأت نداشت که به پنجره ها نزدیک بشه چون می ترسید که توریتلا اونو ببینه و بشناسه. شب شده بود و اون هنوز نمیدونست فیور در کجا به سر میبره. خسته و غمگین نشست روی شاخه درخت سنوبر بلندی که نزدیک پنجره رویده بود و ترانه سر سرداد تا بخوابه. اما خیلی زود صدایی دلنشین و غمگین اون رو به خودش آورد. هوشیاران گوش داد تا بفهم اون صدا چی میگه. ای ملکه ی ستمکار چه کردم که باید چنین در زندان به سر ببرم آیا قبلا به حد کافی بدبخت نبودم که سراغم اومدی و خوشبختی دخترت رو بروخم کشیدی و با حرف زدن از شادیهای اون از ازدواج با پادشاه دلربا منو آزردی پرنده آبی با شگفتی و صبری خیلی زیاد به انتظار سپیددم موند و درست لحظه ای که اولین پرتوهای روشنایی بیرون زد پرواز کرد تا ببینه گوینده اون حرفها کیه اما پنجره بسته بود و کسی دیده نمیشد. شب بعد هم همه جا رو نظر گرفت یک دفعه در روشنایی محتاب بانوی غمگینی رو که کنار پنجره بود دید خود فیوردلیسا بود پرنده در حالی که بهش نزدیک میشد گفت شاه دختم، آیا بالاخره پیداد کردم شاه با تعجب داد زد تو کی هستی پادشاه با ناراحتی گفت فیار دلیسا همین چند لحظه پیش اسمم رو به زبون آوردی. حالا منو رو نمیشناسی؟ اما خب تعجبی هم نداره چون من حالا یک پرندگی آبی هستم و باید هفت سال همینطور بمونم شاهدوخ گفت چی؟ پرندگی آبی؟ آیا تو واقعا همون پادشاه دل قدرتمندی؟ و پرنده رو نوازش کرد اون جواب داد این یک حقیقته من به دلیل وفاداریم به تو اینطوری مجازات شدم. اما باور کن اگه باز هم به چنین تلسمی دچار بشم با خوشحالی میپذیرم. اما تا به جدایی از تو رو ندارم. شاهدوخ فریاد زد. چی میگی؟ آیا تو نبودی که ردای سلطنتی و تاج الماست رو به طوری طلا دادی؟ وقتی به دیدارم اومد اونها رو نشونم داد. اشتباه نمی کنم. حلقت رو توی انگشتش دیدم. اینجا بود که پرنده آبی خیلی خشمگین شد و هرچی رو که اتفاق افتاده بود برای شاهدوخت تعریف کرد. گفت که چطور برای پیوند ازدواج با توریتلا فریبش دادن و به خاطر امتناع اون از این کار چطور پریمازیلا اون رو به مدت هفت سال به پرنده آبی تبدیل کرده؟ شاهدخت وقتی شنید که دلدارش چقدر بهش وفاداره خیلی خوشحال شد. اصلا از شنیدن حرفها و گفتههای دلنشین دلدارش خسته نمیشد اما خورشید داشت طلو میکرد و اونها باید از هم جدا میشدند مبادا که در روشنی روز پرنده آبی دیده بشه بعد از قول و قرار دیداری دوباره برای شب بعد در کنار پنجره اتاق شادخت پرندگی آبی پرواز کنان دور شد و خودش رو توی شکاف کوچکی در تنه درخت سنوبر پنهان کرد فیوردلیسا نگران و دلواپس بود مبادا که پرنده به دام بیفته یا اقابی شکارش کنه. اما پرنده آبی زیاد توی مخفیگاهش نموند. از جا پرید و دور شد تا به قصر خودش رسید. از پنجری شکست داخل شد و شکافی رو که جواهراتش رو در اونجا نگه میداشت پیدا کرد. اون با شکوهترین حلقه یه رو برداشت تا به شاهدخت هدیه بده. وقتی برگشت فیوردلیسا رو دید که کنار پنجره به انتظار نشسته. موقعی که هر رو بهش داد شاهدخت اون رو به خاطر اینکه تن به چنین کار خطرناکی داده بود دلنوازانه سرزنش کرد. پرنده آبی گفت قول بده که همیشه اون رو توی انگشت دل می کنی. شاه شاهدخت به این شرط که اون روزها هم مثل شبها به دیدنش بیاد قول داد که این کار رو انجام میده. اونها تمام شب با هم حرف زدند. صبح روز بعد پرنده آبی به طرف قلمروش پرواز کرد و از پنجره شکسته به داخل خزید و از بین جواهراتش دو علنگو رو که زمورد ناب ساخته شده بودن انتخاب کرد. وقتی اونها رو به شاه هدیه داد اون سرش رو سرزنش تکون داد و گفت آیا فکر میکنی تو رو کم دوست دارم؟ که چون این برام میاری تا به یادت باشم؟ پرنده جواب داد نه شاه دختم اما تو رو به حدی دوست دارم که هر قدر تلاش میکنم نمیتونم اون رو بیان کنم. من فقط این ریزه های بیارزش رو برات میارم تا نشونت بدم که همیشه تو فکرتم. هم. هرچند که مجبورم برای مدتی تو رو ترک کنم. شب بعد اون به فیوردلیسا ساعتی داد که در مرواردی ناب جای گرفته بود. شاهدوخ با دیدن ساعت کمی خندید و گفت <تصفيق> چه خوب کردی که به من ساعت دادی چون از زمانی که تو رو شناختم قدرتم رو در تعیین وقت دقیق از دست دادم دقایقی که کنارم هستی مثل لحظه ای می میگذره و ساعتهایی که بی تو میگذرونم مثل سالها بر من میگذره پادشاه جواب داد سپری شدن دقایق برای تو طولانی تر از سپری شدنشون برای من نیست اون هر روز هدایای زیباتری برای شاهدخت می آورد. یاقوت و عقیق سلیمانی. شاهدخت هر شب خودش را با انها می تا باعث خوشنودی پرنده بشه. اما روز که می شد اونها را توی تشک بوریا پنهان می کرد. آفتاب که سر میزد پرنده آبی در تنه درخت سنوبر پنهان می و براش زیباترین ترانه ها رو به شیرینی سر میداد به طوری که همه رهگذران شگفت زدی می و می که یک رو در جنگله. دو سال به همین ترتیب گذشت و شاهدخت همچنان در بند بود و توریتلا هم از ازدواج با شاهزاده محروم بود. ملکه از تمامی شاهزادگان سرزمین های همسایه برای اون خواستگاری می کرد. اما همه اونها از علاقه خودشون به فیوردلیسا حرف می و به هیچ وجه علاقه به توریتلا نداشتند. این مسئله شدیدن ملکه رو دلازرده کرد. اون می گفت فیوردلیسا با همده هست شده تا منو آزار بده. باید به سراغش برم و اتهامی بهش بزنم. اون و توریتلا از برج بالا رفتند. تقریبا نیمه شب بود و فیوردلیسا که سراپا خودش رو آراسته بود در کنار پنجره نشسته بود و با پرندگ آبی صحبت می‌کرد. ملکه پشت در اتاق مکس کرد و به ترانه آشقانه که با هم میخوندند گوشتاد آه چه زوج بخت ای هستیم ما یکی به زندان و دیگری به درختی بالا همه گرفتاری ما و درد ما هست زسوی دشمنان بیوفای ما هر ترفندی که به کار می در کار ما بیهوده است و نتوانند جدا سازند دلهای ما اونها از سر اندوه میخوندند اما از صداشون شادی میبارید ملکه در رو تندی باز کرد و فریاد زد آه توری ریتلای من اینجا بوی خیانت میاد همین که چشم اونها به هم افتاد فیوردریسا با عجله پنجره رو بست و پرنده آبی وقت کافی برای فرار پیدا کرد بعد شادخت به سمت ملکه که از شدت خشم داشت دیوونه میشد رفت ملکه با خشم تمام فریاد زد سر از خیانت در امیدوار نباش که مقام والات بتونه از مجازاتی که سزاوارش هستی نجاتت بده. شاهدخت گفت بانو منو به چه بهانه متهم تهم می آیا در این دو سال زندانیت نبودم؟ به جز زندانبانها چه کسی رو دیدم؟ اون صحبت میکرد و ملک و توریتلا با حیرت بسیار بهش نگاه میکردند. از زیبایی اون و جواهرات باشکوهش شکوهش مات و مبهوت مونده بودن. بالاخره ملکه گفت دو شیزه. میتونم بپرسم این همه علماس رو از کجا آوردی؟ شاید میخوای بگی که اونها رو در معدنی در همین برش پیدا کردی؟ شاهدخ جواب داد واقعا اونها رو همینجا پیدا کردم. ملکه در حالی که خشمش لحظه به لحظه بیشتر میشد گفت حالا لطفا بگو برگه چه کسی اینطوری خودت این آراستی؟ من هیچ وقت حتی در مهمترین مراسم دربار هم تو رو اینقدر قشنگ و زیبا ندیده بودم مگه نه فیوردلیسا جواب داد باید قبول کنید که در اینجا وقت زیادی دارم بنابراین نباید از اینکه خودم رو اینطور آراستم تعجب کنید ملکه با بدگمانی گفت جدان که عالیه فکر میکنم بهتر نگاهی به اطراف بندازم اون و توریتلا هر گوش و کناری رو گشتند و به هر سوراخ سنبهای سر زدند بعد به سراغ توشک رفتند و مقدار زیادی مروارید الماس یاقوت عقیق سمورت و زبرجت از اون بیرون آوردند از تعجب خشکشون زده بود و زبونشون بند اومده بود بعد ملکه دسته کاغذ از جای مخفی آورد و گفت که اون نامه ها نشون میدن که شاهدوخ با دشمنان پادشاه ارتباط داره و جاسوسی میکنه خوشبختانه پرنده آبی دقیقا در بالای دودکش آجوری نشسته بود و حرفهای اونها رو میشنید اون سعی کرد محبوب خودش رو از خطری که تهدیدش میکنه آگاه کنه هوشیار باش دلیسا، دشمن بدکارت ای در سر داره این صدای عجیب ملکه رو چنان ترسوند که نامه رو برداشت و به همراه توریتلا شتابان بیرون رفتند آنها با هم مشورت کردند و سعی کردند چارهای پیدا کنند بعد به این نتیجه رسیدند که حتما یک پری یا یک افسونگر از شاهدخ حمایت میکنه بالاخره یکی از های ملکه رو برای مراقبت از فیوردلیسا به برج فرستادند بهش گفتند که خودش رو به حماقت بزنه و شخصی ابله نشون بده که نه چیزی میبینه و نه چیزی میشنوه کارش این بود که شب و روز با دقت تمام فیوردریسا رو زیر نظر داشته باشه و هر کاری میکنه ملکه رو در جریان بگذاره فیوردریسای بیچاره که مطمئن شده بود ندیمه رو برای خبرچینی فرستادن خیلی دلسرد شد و از اینکه دیگه جرأت نداشت پرندهٔ آبی رو ببینه خیلی گریه کرد اون می ترسید که به وجود پرندگی کوچیک پی ببرند و بلایی سرش بیارن. روزها طولانی به نظر میرسید و شبها خف اون یک ماه تمام به پنجره نزدیک نشد. ما بادا که پرنده به طبق عادت به طرفش پرواز کنه. بالاخره خبرچین که روز و شب چشم از شاهدخت بر گرفت چنان خسته و کوفته شد که طاقت از کف داد و به خوابی عمیق فرو رفت. شاهدخت دیدن این وضع، به طرف پنجره پرواز کرد و به آرامی صدا زد پرنده آبی، آبی چون آسمان، به سوگم بیا، نیست کسی کنارمان پرنده آبی که در تمام این مدت در اطراف زندان شاهدوخ پرواز می و می در اونجا چه می شتابان به سمت پنجره رفت اونها حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. و اونقدر از دیدن دوباره همدیگه به سر زوق اومده بودن که اصلا متوجه نشدن پنج دقیقه تا طول خورشید باقی مونده. پرنده آبی مجبور بود از اونجا دور بشه. شب بعد هم خبرچین خیلی آروم به خواب رفت و پرنده آبی به دیدن دلدارش اومد. اون و شادوخ فکر میکردند که کاملا در امان هستند و برای آینده سراسر خوشبختی خودشون نقشه ها میریختن. اما افسوس، شب سوم خبرچین خوابش خیلی سنگین نبود و موقعی که شاهدوخ پنجره رو باز کرد و طبق معمول پرنده رو صدا زد، خبرچین بیدار شد. چون کمی تنبل بود، هنوز چشماش رو باز نکرده بود، اما صداهایی میشنید. با دقت گوش داد، چشماش رو باز کرد و در زیر محتاب زیباترین ترین آبی را در تمام جهان دید که با شاهدخت حرف میزنه و اون هم با علاقه بسیار نوازشش میکنه. خبرچین حتی یک کلمه از گفتگوها را از یاد نبرد و به محض اینکه سپیده سر زد و پرنده آبی با بیمیلی از شاه دختر خداحافظی کرد، شتابان پیش ملکه رفت و را که دید و شنیده بود تعریف کرد. بعد ملکه به دنبال توری فرستاد و با همدیگه دیگه شروع به هم فکری و مشورت کردند. اونها خیلی زود متوجه شدند که پرنده آبی همون پادشاه دلرباست ملکه فریاد کشید ای شاه دخته گستاخ درست موقعی که فکر میکردم درمونده و نامیدی با پادشاه دروغین دل میدادی و قلوه میگرفتی اما میدونم چطور ازت انتقام بگیرم به خبرچین دستور دادن که برگرده و خودش رو مثل دفعات قبل به خواب بزنه اون خیلی زودتر از قبل به بستر رفت و تا حد امکان خیلی طبیعی خورخور کرد شاه دخته بیچاره به کنار پنجره رفت و صدا زد پرنده آبی، آبی چون آسمان، به سوگم بیا، نیست کسی کنارمان، اما پرنده ای نیومد. اون تمام شب پرنده رو صدا زد و منتظر موند، اما هر چی گوش کرد جوابی نیومد. ملکه یه ستمکار دستور داده بود تا درخت سنوبر رو با کارد، شمشیر، تیغ، قیچی باغبانی، قلابهای تیز و داست سوراخ سوراخ کنن. برای همین وقتی پرندگی آبی صدای شاهدخت رو شنید و خواست پرواز کنه بالهاش زخمی شدن و پاهای کوچک سیاهش گیر کردند همه به جونش افتادند و بیست جای بدنش رو زخمی کردند پرندگی خونین به ته شکاف درخت پناه برد و نالان و دردمند و دلشکسته همونجا موند فکر میکرد شاهدخت مجبور شده در ازای آزادی خودش بهش خیانت کنه آهی کشید و گفت آه فیوردلیسا چطور تو اینقدر دوست داشتنی و در عین حال اینقدر بیوفا بودی حالا که اینطوریه من هم به زودی خواهم مرد و همونجا که بود به زمین افتاد و آماده مرگ شد خب فعلا پرندگی آبی رو تنها میگذاریم و انشاءالله در روزای آتی ادامه داستان رو پی میگیریم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 ماجراجویی در سرزمین, های زیر, دریا. ماجر در سرزمین های زیر دریا همه اینها و بیش از این ها در کانال تلگرامی هزار افسانه، افثان. داستان های صوتی